به ما صدا موقعی که این جلس صحبت میشه کنم مذاره دین هستش و من سالم رو و من سالم رو اینطور شروع میکنم که کنم با دین توضیح بدید و اصلا دین یعنی چه برمان بسم الله الرحمن الرحیم دین در بیان قرآنی تدیبایی تاییفی بسیار واضح و ملموسی شده وانونه که ایند دینه لباقه این راستی هر آن واقع است. بیان دیگری من از یعنی میشه که دین این واقعیت است. این تصفیر نیست خود ترقیمه تصفیل دفتی عادی همین رو میگه دین این واقعیت است. واقعیتی جاری و این احصاست میشه گفتش که کل آدم هستی دین است کل کائنات و هران چی که در آن است دین است بیان دیگرش این میشه که پس همه موجودات در دینند معنای لغوی دین یعنی راه بیان دیگرش این میشه که پس کل آدم هستی راه است چه راهی؟ راه خدا، راه رسیدن به خدا راهی که خداوند در آن رفته آمد میکنه از فاصله بین عرش خودش تا فرش به کائنات آدار ماده و مخلوقات و موجوداتش این هم توضیح دیگری میشه که خیلی است توضیح بنابراین اگر چنین هست تمام ظاهر و باطن جهان هستی بس تماما در دین هست. یعنی دوزخ و برزخ و بهشت و طبقاتش هم تمام دین است و در دین است و خود کل جهان هستی است. این سخنی از پرامان اکلم هست از ایشون سعاد می که بسر و افاق دوزخ چقدر، ایشون می فرماد باندازه کل در آدم بعد ازشون صاحب میشه که پس بهش کجا هست پس جایی برای بهش نیست انگار میگه نخیل بهش هم بندازه کل عالم هستی از این سخن نبیان بر استباد میشه که پس دو برزخ هم همین دو هست پس کل عالم هستی هم دوزخ است هم برزخ است هم بهشت است برای یکی دوزخ است برای یکی برزخ است برای یکی جنت هست وست با یکی خب پس اگر وست داره پس معلومه که اینها مفاهیم و جلوه های انسانی جهانه دوزخ و, و بهشت برای نباتات و جمادات و حیوانات وجود نداره فقط برای انسان وجود داره این رو ما تو قرآن خیلی وزیم میتونیم درک کنیم پس میشه گفتش که این جلوه های عالم هستی، این جلوه های دین که در سه تجلی بیان میشه که در سایر مذاهب دیگه هم این سه تجلی وجود داره در دین زرتشت، در حتی بودا مثلا بودا، در مسیحیت، در یهودم اسلام. بنابراین میشه گفتش که پس پیام در که دین و شناخت حق دین برای انسان است همینطوری که با سطق کلام و باراندنی زهادیست ما داریم که اصلا خداوند جهان رو برای انسان آفارید یعنی دین رو برای انسان پدید آورد یعنی انسان مسئول است و توابط انسان با وقیه موجود هم از همین بوده انسان مؤمن از ضرب جهان جنت برای این جهان وارد میشه این جهان رو از درجات و طبقات جنت رکل کنه انسان کافا هم طبقات جزد و الاخر این یک کلی از دین در این حتمت فکر میکنم کنم که پاید بنابراین حالا این دین با عنوان آدم هستی راه خدا که در انسان و برداشتهایی که انسان از جهان میکنه صفاتی در انسان فتید میاره که کفر ایمان شرک نفاق اخلاص، انما و درجات رابطه انسان با جهان هستیست یعنی با دین هست این دروق با خدا هست حالا هر قدومت این ها رو میشه مفصل صحبت کرد این داز باید گفت که از دین یک راه هست که دو سر مطلقش یکی کفر است یکی اخلاص یک راه هست و تیفهایی داره که دو قطبش یکی کفر است یکی اخلاصه اسلام و ایمان و شرکون خاق و درجاته اینها میشه گفت در فاصله بین این دوتا قطب قرار داره یک تیفه نه انسان بر این تیف حرکت میکن این تعریف کلی رو منابراین میشه اینجوری در یک کلمه جنبندیکه کرد که پس یک دین بیشتر وجود نداره برای همین بسیار دادم اعتقدان که واشه ادیان هستن قلت در قرآن هم ازیان بکنند رفت بودیم و پیانبران خدا آمدن انسان رو با دین آشنات کردن یعنی با جهان آشنات کردن برای همین در قرآن کریم خب، کتاب دینه دیگه قرآن خب. بخش عظیم و عمده از قرآن سخن بستن موجودات مخلوقات هست ستارگان، خورشید، ما زمین، آب، دریا، کوه، ما بریم خب این دینه دیگه قابل خب مستی بعد دید دینشتر بجونده برای پیامبر ام اومده در قوم خودش و در دوران خودش و به زبان و تجربه قوم خودش و بر اساس و و درک قوم اون قوم این دین رو مدفی کرده و مردم رو در وسط دین کرده کل آدم هستی کتون در دین و اصلا خود دینه برامنی در قرآن کریم داریم که تمام مخلوقات خواه ناخوا مشغول تسبیح و ذکر پروزگار هستن تمام ذرات و قرآن من دجاندار و بی جان الا انسان ها اکثرا قافلن یعنی در گفت میشه گفت قافلترین و جاهزترین موجود کائنات انسان چراچه اینه خب این یک بحثیست که چراچه ما باقی غریزتن و ذاتن و ناخودآگاه همه مشغول تسبیح و سوشده هستند الا انسان ها اکثرا اینطور نیستن انگوشتما در از انسان ها در درجاتی از این تصبیح و سوشده و زکر قرار دارد خب از این طریق خودی که بگیداریم اگه از سوالی خود تر در این چار شد دارید من در آماده که شما سوزارش میکنید با, با من کف و دو سار توضیح بدید که و واقعی ایک در برس خلقتش کدوم یکی از اینها رو به طور ذاتی داره حساب همینا رو که نداره یا همینا درش هست به تدریج در حین رشدش اینها ازش بروز پیدا میکنه، این کفر و ایمان و, فاق و یا این که نه اینها به بسیار تلاششی که میکنه، یکی از اینها رو برخودش وارد میکنه یا دارا میشه. این چطوره این وضعیتش در یک بشر؟ از آن اون ذات قطعی چطوره و اینکه اینها اختصاصیست یا وارد است یا زاویه است؟ نتور که باس ما از قرآن کریم درک میکنیم همچین از مجموعه معارف دینی و احادیث اسلامی اینطور میتونیم بگیم که انسان دارای ذاتی است و دارای صفات ذاتش و توحید بر نفس واحده است آن واحد خود پروردگار چون خداوند آلام و آدم رو از نزد خدافرید بعد از ذاتی و اهداری خدا فهمی در این گفته شده است که ذات انسان خداست همونطور که از درد می فهمات که خود خود انسان خداست این خود انسان خدا نیست ذات این خود خداست خود در عربی در فرق قرآنی متارده است با نفس این خدا نیست خود به خود ذات این خود اون خداست. برای همین خودشناسی انسان رو به خوداشناسی میستنه این خودشناسی وقتی که رفید به قدم روی ذات در اونجا خوداشناختا میشه قید از این نفس که تماما دنیابیست و مادیست و قدم رو صفات هست اونجا خدا نیست اتفاقا این خودشناسی و غل 999 منزل از این خودشناسی و معرفت نفس تماما شناسی است اتفاقات هزارومیش خداست. خداست این 999 منزل و واقع میشه گفت طبقات و طبعات نفس که قدم روی استفاده که تماما تعلینات تجسومات و امیال و گرایشات مادی و لذا کافرانه ای بشد از الله این گفته میشه دین فطریست به این که ذات خود خداست. خب بنابراین پس انسان اون ذات اون وحدانیه درش حضور داره پس فطریست. دین گفتین رای رسیدن به خداست دید. پس خدا در انسان هنگی حاضره. منتظره که انسان به او برسه. هم توی که در خود قرآن که من منتظرم شما منتظر باشی تا به هم برسیم در واقعه. خدا در انسان منتظره. در آسما منتظر ن <تصفيق> بعد در خود قرآن کریم در دهها ها که ست ها آیه ما کاملا ندت میکنیم که طبقات و طبقات نفس که قلم روی هست تماما کفر است از این لحظه انسان میشه گفت کافر است انسان نفساً کافر است ولی ذاتاً مؤمن است تماماً مؤمن از اسمای خداست اون مومن در انسان حضور در ذات انسان ولی نفسا کافر است این در قلب روی صفات خودش کافر است برای هم نگذر می فرماد که شناخت پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است و گناه است مستیت است این خدا نیست. این در قلب روی خدا شناختا نمیشه انسان از قلب روی نفسانیت باعثی ورا بره فرا بره در حقیقت تو گفت امیختر بشه فرو مره در حقیقت بایست گفت تا به ذات برسه اونجا قلم روی وحدانیت است و با اون خداست در قلم روی قبل از که به قلم روی ذات برسی تماما قلم روی هاست خوبی بدی خیر شر زشت زیبا مفید مزر بهشت جهنم ببین در اینجا خدا پیدا نمیشه اینجا دومانگی هاست قلم روی شرک هست. آ، خود را شریک که خدا قرار اردو لندی، در نفس خیر هست شد است، خیر خداست، آ؟ شب غواتی بیست است، می‌خویی؟ خدا و شیطان رو با را شریک کردن، آ؟ کمی شرکت است. انسان خدا و شیطان رو باهم شریک کردن با من قطعی یعنی خود را با خدا قاطی کردن چنانا ولی که خود و نفس تو بشر؟ طبعا پیروه ابلیسه ابلیس دو قرآن تریف شده تمام وعده ها میده وعده میده آرزه ها دنیایی علاقه میکنه و تا رو مورید میکنه خب امسان ها دنیا خیلی هسته دیگه چون در دنیاست. هست نبالی قلم روی سفار قلم روی شرک هست قلم روی و دوبانگی هاست و بینان دیگر قلم روی دیالکتیک هاست و دا قلم روی استهلاحی هست برای هم بیان منطقی فراسوی خیلی و شرد است فراسوی نیکوبت باید و نباید است فراسوی کفریمان است اتا. اونجا قدم رو میبانگی یا خدا خداست پس از این سال که آیا انسان خودش نفسا کافر است یا مومن بعد اگه است ذاتش مومن است نفسش کافر است ما در کردیم چندین آیداش داریم که به طور عام خداوند انسان را خطاب قرار داده که انسان کافر است جایدکی می فرماید ظالم است باز می جاهل است انسان با خود این است الاکی با قلم ذات برسه حالا چگونه با قلم ذات می رسه داستان نبوت هاست انبیاء الهی دعوت هاست و اطاعت هاست که آمنون خب در سوره اصر داریم که این در انسان نفی خسر برایستی که انسان تمام در خطر و است خسرانش و تباییش حتمیست داره باریم که نفت تماما است الا آمینو همیشه الای یعنی استثناست ایمان وضعیت استثنایست از این لازه که بخوام بیدیم وضعیت قالب و طبیع و غریزی کفره الای یعنی استثناء دیگه ها؟ همیشه هدی جاتبات واسه ایمان میشه بلا واسله با اللا میشه اللا اینکه ایمان بیاورد به کی به رسولان عمل خود را اصلاح کنه دایل از این طریق انسان میتونه طبقات نفس رو خونه به شکافه قمول کنه به قانیتش برسه به قلم روی ذات که خداست وارد بشه که اون قلم روی تویده همینطور که نهوال دین و رس دین و غایر دین تویی این که شما میگه در ذات پس هستان مومنه پس از ایک طرف هم این صحبت رو می کنه که کفر و ایمان به عنوان یک دوگانگی در فرصه بوز و هست و اون وقتی که صحبت از ذات به بامان توحید صحبت از یک عمر فراسوی می‌کنیم که نه کفر نه ایمان از بابت هم این صحبت رو که در ذات خودش مومنه پس ایمان مثلا یک در درصد این مثلیم حالا این سال رو من اینطوری که این ایمان آوردن چگونه است. هست یعنی واقعا اینکه شما می‌گید یک اوله مثلا یک وضعیت همگانی نیست و است خب چطور یک فرد میتونه بر انبیاء یا خداوند ایمان بیاره خب یه طرف نظر میاد که ایمان آوردن هم قلبی است ولی خب قلب بشه که در دستش نیست که حالا به خودش بگه ایمان بیارم یا نیارم چطور همشون اتفاقه میوفته که یه فرد بتونه مثلا یه فرد مومن یا خدا ورد ایمان بیاره هم رسول توضیح بدید ممنون شد ما از ذات صحبت کلیم و صفات حالا با از سی بگیم آقا این و صفات از لازه وجودی و واقعیت وجودی انسان آیا جایبایی هم داره یا نه بله من از امان نظر من در بذات از دل باز میشه پس میشه گفتش که قلب انسان ذاتن و طبعا مومن است و در صفات یعنی دنیا، لوس بازی ها یعنی الفاظ شیطان از ذهن واسه برای همینا در قران کریم هر بحث صحبت ایمان هست ما گفتیم ایمان امر ذات دیگه ظاهر انسان مبره ها همیشه شده که قلب است. مثلا هر جا که بر اثر شیک هستن فوق است و فلان سوال بر پروژه های کامل اندرو آگاهانه است یعنی این صحبت بر اثر ذهن هست عدیه طرف میدونیم که انسان دو تا من داره شاید بشه گفت دو تا هویت داره. دوتا خود داره. این دا هر اعتزادی تا وجود خودش احساس نکنه. برای همین انسان در هر تصمیم اقدامی همواره مواجه با میشه با یک دوراش، دوراهی دل و ذهن. دوتا من یک من قلبی اساسیست، عاطفیست، یک من ذهنی آگاه هست. و خانا، و منطقی ولی میدونیم همطور که شما گفتید انسان صاحب قلب خودش نیست. ولی صاحب ذهن خودش هر مطلق می تواند باشد. به میزانی که آگاهی کسب میکنه دانش کسب میکنه تفکر میکنه کنه می تواند طبقات ذهن خودش رو بشکافه، در آنجا حضور داشته باشه و صاحب اراده بر ذهن خودش بشه. یعنی خودآگاهی داشته باشه. همان اراده انسانی انسان همواره در ذهن درک میشه برمین کانون تصمیم گیری انتخاب برنامه ریزی ذهنه دل نیست اینو ما میدانیم خب طبیعی اگر ما میگهن انسان صاحب قلب خودش نیست این به این معناست که انسان صاحب خدا نیست نمیتونه واسه خدا تا این درکسی خدا که صاحب اینسانه مالک از اسمای خداست. یا مالک و یا قدوس در قرآن مالک در خداست خدا مالک انسانی اون صند مالکیتش و حضورش اون مالک بودن و ملک بودن و سلطان بودنش در واقع اون تخت سلطنت در انسان قلبش قلب در واقع تخت سلطنت ست... خداست ب دیگر منظر خداست اصلاً خدا صاحب انسان انسان صاحب خدا نیست درست با هم دل که انسان صاحب دل خودش نیست همین همه به بتجوی می‌زنه که انسان هرگز نمی‌تونه اساسات واقعی خودش رو مهار کنه ها یا خیلی به بسوزه تبدیل کنه بعد اساسات خودش فایق بیاد با خودی خود انسان نمی‌تونه این کارو میکنه هیچ چیز واضحه انسان میشه از آموزش‌ها از طریق اندیشه از طریق برخوردها از طریق مشورت‌ها می‌تونه چندین جا تغییر بده تو خودشو جابجا کنه، آروجهای خودشو رو تغییر بده، جابجا جا کنه. اینو این کارو میتونه. خب سوالی هست که آیا ایمان ارادی است یا نیست؟ خب تا اینجا ما دیدیم که ارادی نیست. ارادی به من ما نیست. که من تصمیم می‌گیرم که من بیان بابا، تا روی ایمان بیارم. نه نمی‌شه. این مسأله قابل اون قلم واسه. یه ایده در داریم که هیچ قلبی بی اذن خداوند ایمان نمی آورد ببینیم؟ خداوند به دل اجازه بده که ایمان بیاره این هم واضح در این حال باز هم این سخن رو در قرآن داریم که چه بسا کافران دلشون می خواهد و می که کاش ما هم مؤمن می بودیم البته در گوشی یا واشکی یا پیش خودشون خب و بعد خداونی فرماد این که اینا ایمان نمیارن علمش کنه که همکنون هم که این حرف میزنن یا همچین خواستی دارن مشغول و گناه هستن مشغول ظلم هستند و نیستن دست از حمال زشت خود بکشن خب و پس اگر اونا دوست دارن که ایمان بیارن خب او این دست روما داری آن. آن خواستن ایمان نیست. باید سعی کنند دست از گناهانشون اعمال زشت و زور دستور دست آن وقت ایمان خواهند این آیه این استنباهات رو خیلی واضح به ما منتقل بکنه خب پس در این حال که هیچ دلی بیردن خدا و ایمان ولی در این حال انسان هم اگر بخواهد میتواند ایمان بیابرد شکلی دست از گناه و ظلم ظلم شستن خب, خب اون وقت خدا اون دل اجازه ایمان آوردن میده خب چرا که چه باسه و کافران میبین این کاش بودیم، بودیم ولی اینا در تماشای وجود مومنان یا پنبران میبینن که چه عزت و اختدار و آرامش و اتکاب نفس اونها دارن و در بعد یوزگی و حراس خودشون رو و بیبنیادی خودشون رو میبینن وقتی درشون میگن این کاش مومن بستونها بودیم خب این پس اگر کافر من خیلی داشت میخواد بهمون باشم پنجشون میده که ایمان ری ذاتی و انسان ذاتا ایمان رو دوست داره ولی دوست داشتن کافی نیست انسان بای جهاد کنه دست از تم زیشتهش برداره مسلمان خدا هم تو بخی نیست خدا هستند فقط در انتظار که این, این چیزیست که توبه کنه دم آ شتهش تا به قلبش ایمان این هم بهدیی آیایت زیادی از زوای زیادی از همین چند مورد رو فکر کنم کافی که ما بفهمیم که در این حال این ایمان حلود اراده خدا و مشیط الائید وی در این حال انسان هم اگر می میتواند ولی با جهاد خب باز ما این مطلب رو در مورد هدایت سر قرآن کریم هست که خداست که هر را که بخواد هدایت رو گمران میکنند خب از این آیات را اگر فقط همین آیاتی یه نگاه کنیم و آیات دیگر رو نگاه نکنیم به نظر میزده که ایمان هدایت هم دوست جبلی و انسان به وقتی بن‌بازو پرداشی است، چپی و ازو بازو باشیست کاملاً قبلانه و کافرانه بنداشی دیبی نیست. خیلی در این بنداشتای کازی پر دارن. حتی بسیار از علما حتی. اون اولین بازو بر این که بله مربوط به قلب است، از قلب که رخ میده و بدون اجازه خدا، بدون اذن خدا رخ نمیده ولی تنسان بستی بخواد ولی خواستان کافی نیست بواسطه جهاد بکنه یعنی ترک گناهان بکنه تا خداوند به قلبش ایمان بده. حالا این صحابه آشتایی بشه که ایمان چیزیز خوده؟ ایمان چیست؟ خب ایمان, ایمان کفتی بس در قلب روح میده همونطور که کفر قدم برویش در ذهنی احساسا کفر رو شیل کنه فرقه نه قدم ایمان جاش اینجاست در دل ایسا و این رو واضح شد که ذات که میگیم در به ذات دلی صفات که میگین درش زینه نسان دل قلم روی سلسنت خداست وین قلم روی سلسنت, سلسنت دیگریس سلس. هست بس ما هم نم داشتیم بیشتر این تکرار خب ایمان خود لغت ایمان فقشی عظیمی از معناش رو در برگ داریم و متاسفانه در قلم روی سکر و فرهنگ با خصوص در دین و مطالعه قرآن و درک مفایم قرآنی بسیار به ندرت خود ذات واجه ها و سر واجه ها این کلمات خدا کمتر تفکر میشه بیشتر به تفسیر به در معانی پرداخته میشه که این معانی اساسا فرهنگی به در گذر تاریخ هستند به بیریشه و حتی گمراه کننده خود ایمان از ایمنی میاد از امنیت میاد از مسئولیت میاد پس مؤمن یعنی کسی که احساس ایمنی میکنه در قلب خودش یعنی ذاتش یعنی وجودش ایمن میشه و احساس ایمنی میکنه چرا به با خدا ارتباط برقرار کرده چرا برای این که متذکر باشیم که در فرهنگ قرآنی خداوند در دل شناخته میشه مؤمن اسم خداست و در دل انسانه در فرهنگ قرانی خداوند در بیرون از انسان و در آسمان ها نیست یک آیه حدیثی که داده بر همچین مفهومی باشه وجود نداره خدای ذهنی هم در فرنگ سامی خدای مشرکان و کافرانه یعنی خدایی که در زن انسان متدبر میشه که ایده خدا رو بوجود میاره این هم خدا نیست در قرآن آمده که این زن است و این خدای مشرکان است. خدا در قلب درک میشه و قلمرو رو به جابدانگیست. خدا اگر مظهر وجود مطلق و ازدیت و عبدیت و جابدانگی سرمدیت هست پس مومن به میزان درجه و قوت ایمانش خدا را احساس میکنه و احساس جاودانگی میکنه پس ایمانه چرا برای اینکه تمام هر آسای انسان ناشی از احساس تباهی و مرگ و است پس یک مومن کسی که از حراس به مفهوم عام و از حراس مرگونیستی به مفهوم خاص رهیده. در واقع میشه گفتش که بیمه قریبی شده. از هر بیمی نجات میدار کرد برای همینه که قول میفهمد که کافران هم میگنه کاش ما بودیم این سفت میخوام. این شداعت قناعت خودکفایی و نترسی آنها را که در دریوزه دنیا و اهل دنیا نیستن. احساس خدایی دارن. این هم بیان دیگری از مفهوم ایمین هست و مفهوم و مسئولیت در درجات اتباه فکر مبنی تو این سالشون شما اگر شده میتونی ساله بگیریتون این طور که در مورد ایمان داردیت حالا در مورد کفت صحبت بزارمیت توسران اصلا کف چیست چه معنایی داره در خود واجه ازش چه نشانه هایی داره و چه چیزی در اون فرد اتفاق می افته این موجه بکفت بیشتر طور زفیدی ببینید میشه اولین مطفق رو باستی ما دقیقا فهم کنیم سنفن یک دورهی در زندگیش ناری که در فرهنگ قرآنی مروفت به دوران جاهلیت دوران جاهلیت است که انسان متقرند هنوز با ایمان آشناییت پیدا نشده با ایمان آشنایست. اگر هم با دین و ایمان آشناییتی داره وراستی است و مربوط به تربیت خانوادگی و شرایط جبدی جامعه است اون ایمان نیست اگرم بگیم ایمانه باست بگی ایمان جاهلی میگه اصاسا ایمان نیست اگرم هست ایمان کوره ایمانی نیست که حدایت کننه ایسان تو ایمانی هدایت کننده نیست حدایت از جنس نوره و واقعا این دوران دوران جاهلیته اینسان بسته به شرایط خانوادگی و اجتماعی خودشون معمولا در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی در قدم جاهلیت یا کفر جاهزیست یا دین است. بسته به اینکه پدر مادرش به ما خانواده و شرایط اجتماعی چی بوده باشه پدر مادرش کافر باشه یا محیط اجتماعی کافر و فاسقی داشته باشه تا دارای کفر بود و کفر جاهزیست و اگر پده اما در این داشته باشه و در یک شرایط اجتماعی دینی بار اومده باشه اونم یک دین قریدی و راستتی داره یعنی جاهلی اونها اون راه داید نمیخونه و همین داید این دین و راستی هی هم نداره به یک بحانه کوچک چو گسته میشه یکم شرایط هم از بشه یکم برون وقت تر اون سر تا همه رو کافران نداشت دیگه می این چه سرم بستاد نداره. حالا از کفر جاهلی هم داریم کسی که در شرایط کافرانه و بیدین و لامذهب و اباهیگری بار اومده طبیعتن دارای کفر جاهلی است بنابراین باز این ایمان و کفر جاهلی و وراستی هر کم بیشتری هستند هیچ مده از انسان دفیر نیستن و خداوند هم باره دیر یا زود های دینی رو به یک انسان نشون میده که اگر در کفر جاهلانه یه بار اومده و دین وارد بشه و ایمان بیاره و ایمان رو به خط کنه یا اگر یک دین وراثتی کوری هم داشته دیر یا زود در شرایط مطابع شکسته میشه و طرف کفر جاهز میشه که باز خداوند به وعدهی که داده حتماً حجتهایی در زندگیش قرار میده حجتهای عقلی، تجربی یا مامنایی رو در مسیح زندگیش قرار میده تا اودین رو و ایمان رو گراده کنه و انتخاب کنه باید بخواهم از جنبه محسوس تری صحبت کنیم آنطور که قرآن به ما میاموزه یک انسان مؤمن چون انسانیست ایمن. حراسی از نابودی نداره، حراسی از فقر و تباه شدن نداره، دلش متصل با خداست، آن مومنی که دین رو انتخاب کرده، نه ایمانه، وراغ چه رو این مومنی انسانی صالح، متکی به نفس، قانه، اهل شروع و, شر و جمع و جدال نیست، انسان به درجه، انسانی حس و بخیر و عدوم نیست، عموما در صلح با جهان و جهانیان هست. انسانیست، حرام، متین، باوقار و با عزت، و با قناهت. نیست به دریجه ایمانش، خودکنوش نیست با خواسته ها و آرزوهای های دنیاییش به هر کاری یاده نیست بزنه. برعکس، و در این حال مردمان رو معمولا اگر دوستانش باشد در حال همه مردمان رو عدوی خودش نیم گیرد. که کافر برعکس رو. همه رو دشمن میبینه، همه رو انسان ایس وحشت زده یه تقیقی سوزا بخونه این دومه از جاش میپره از ترس مرگ همه اش ترس مرگ و فقر و بیابر ویر نیستی داره همه داره میلرزه و همواره از بیرون متاج بیمه هست انواع اقسام بیمه ها چیزی از بیرون این بیم رو از او بگیره و بیم رو بتون در او بده این حراسش رو متاج بیمه هاست ولی انسان مؤمن از درون بیمه شده است او بیمه داره است مثلا قرار می‌خوام که عموماً شما شما باساط تا کافران رو که دشمن شما هستند شما اونها رو دوست دارید با اینا علاقمندی نداری بغض کنی ندارید ولی بدونید که اونها شما رو دوست ندارن و دشمن شما هستن حتی اگر پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و شما هم باشه اینو بزنید این اینطوری میشه گفتش که مومن انسانی است دارای قلبی زنده و لذا رعوف لذا در درجات ایمان و اخلاصش انسانی است با محبت ولی کافر قلبش مرده است یا در خواب لذا قلبش شقیاست او حتی مثت به خودش شقییه و اصولا کسی رو نمیتوانه دوست بداره با محبت و صلح و آرامش و احساس ایمنی و قناعت و صبر از های ایمان بزرگتری نشتر عاطفی محبت محبته خداوند قرآن آورده که آنها که ادعا میکنن که کسی رو دوست دارند در اینجا از خوب صبر میشه اگر راست بگوین اونا خدا رو شدیدتر دوست دارند ببینید از محک قرآن در محبت در اینکه دلی با محبت هست یا نیست آن خداست چون خدا در اون دل حیی حاضره و انسان تونسته با اون خدا رو بشه به همون می دان اونجای رو از اون که خدا من منشای محبته رضا مون انسانم در درجات دارای محبتی و اصولاً می تواند دوست بدارد و ولی هر کس هر چقدر دوستش باشه خدا شاند دوست داره چون خدا منشای محبته خدا دوستشتni تر از خادم دوستشتنی تر از مخلوب ولی کافران ها هیچ کسو نمی تواند دوست داشته باشن دا دوستی اونا یا دروغ و مکر یا نمایشی است که میخوان فریب کاری کنند یا تماما شهوت باریگیست و حوض بازی های من که آن رو خوبحبت میداند نه هم طریک دیگری نیست است برای این واسه خدابان فرما که کافران را می که بر حرف ظاهر دارایی چه صفوف متحدی هستند ولی از هم دیگر بیزار است ببین ظاهر متحعد هم در گروه های در اعصاب در گروه ها در بان ها در, در فرگاه ها اما ولی همون خود خودی خوافران نمیتونم دیگر دوست داشته باشن ولی مؤمنان حتی دشمنان خودشون هم نمیتونن دوست داشته باشن یا دلال نمیتونن کی نداشته باشن این هم بیان دیگری از جنبه آتیفی و من مستر و توابط بینیم من اه... ادامه توضیحات شما در مورد کفر من میخوام. خب... نمیدارید بیان شاید آمیانه تری از کفر داشته باشم اه... ببینید کفر به معنای ناسپاسی... اه... هست ناسقاسی خب در قبال چه چیزی؟ ببینید بشر همیشه به میزانی که متکبر بوده به میزانی که خودش رو عامل و بانی وجود خودش و زندگی که در اون به سر ببره بدونه این میزان ناسپاس بوده در قبال رحمات و نعمت پروردگار و به همون درجه هم نسبت به وجود خدا کافر بوده یعنی هر برشری به میزانی که واقعا نمیخواد بپذیره که آنچه که آن شرایط و آن وضعیتی که داره اون در اون زندگی میکنه یک رحمت و یک نعمتی از جانب پروردگار و تمام رو میخواد خود رو خالق خودش در واقع بدونه به این به این درجه این فرد کافره یه ما میخواییم مثلا کف رو یک بیان آمیانه بکنیم که هر کسی بخواد مخواد هم تو به خودش نگاه بکنه و بفهمه که چقدر کافره باید بگیم که به میزانی که فردی ناشکره کافر. هرکس که خیلی غر میزنه هرکس که به همه چیز داره فوش میده هرکس که هر آنچه که داره درش زندگی میکنه رو اصلا تحقیر میکنه و همیشه حسرت زندگی دیگران رو میخوره به همون درجه این فرد کافر این بیان و یا تعریف بسیار معنوس و ساده است برای اینکه هر کسی واقعا بتونه بفهمه که چقدر کافر ببینید کلن بشر کافر خب، پس بشر کافر یعنی بشر متکبر یعنی بشری که هیچ وقت خودش رو در شعن زندگی که میدونه ندونسته و همیشه احساس کرده که حیف شده همیشه احساس کرده که آنچه که در اون داره زندگی میکنه در شعن و مقام و مرتبه اون نبوده و نیست و بهش ظلم شده و در حال این بشر بشریست بشر که به خاطر تکبرش ناسپاس نسبت به آنچه که در اون داره زندگی میکنه و در واقع میشه گفت کوره نسبت به رحمت و مهمت خب این بشر حالا در دنیای زیست میکنه که طبیعتا وقتی که نسبت آن رحمات و عممت های که که اولین و رحمت پروردگار همون جان خودش هست این فرد کافره و متکت داه و اصلا احساس میکنه که حتی خودش خودش رو خ کرده حتی به این حد باور داره خب این فرد این بشری برای اینکه بخواد واقعا این تکبر خودش رو ارزا بکنه و واقعا به خودش اثبات بکنه که در ش... این زندگی در شعنش نبوده و زندگی رو در شعن خودش و مرتبه خودش برای خودش پرید بیاره چمین وضعیت این فرد رو نیاز منزه به دنیا میکنه. ببینید یک بشر کافر میخواد میگم در درجات در واقع پساور خدا رو انکار میکنه ممکنه با صدای بلند نگه، ولی این ناسپاسی در واقع همون انکار خداوند هستش و اثبات خود. حالا این برای اینکه خودش رو اثبات بکنه، چه ابزاری داره؟ ابزار این فرد طبیعتاً دنیاست. پس این خودش عامل اصلی نیازمندی فرد کافر به دنیاست. یعنی یه فرد کافر به این که میخواد خدا رو منکر بشه و خودش رو اثبات بکنه و حقانیت خودش رو اثبات بکنه و برتری خودش رو اثبات بکنه و تمام این ترینهای خودش رو اثبات بکنه خودش به به خودی خود نمی‌تونهش اثبات بکنه نیازمند ابزار و این ابزار یعنی دنیا پس خودپرستی یا اثبات خود لاجرم به دنیا پرستی میشه پس یک فردی که کافر هست نمیخواد دنیا را بپرسته. این دنیا پرستی اجتناب ناپذیر میشه برای چنین فردی. یعنی اون چون میخواد چون خودش رو میپرسته با عنوان اثبات خود تا با عنوان پرستش کافرانه در واقع. چون خودش رو میپرسته و خودش رو در مقابل خدا قرار میده در مقابل خدا قرار میده در این وضعیت مجبور که به پرستش دنیا بپردازه تا بتونه از دنیا استفاده بکنه تا خودش رو اثبات بکنه خب در این چنین چر... شرایطی دنیا طبیعتا هرچه بیشتر باشه برای چه فرد فردی بهتره پس نگاه یک فرد کافر به دنیا نمیتونه یک نگاه جهان نباشه اصلا اون نمیتونه چون خب هر چقدر که دنیا رو به دست میاره خب این اثباتی اتفاق نمیفته چون این اثبات دروغه این اثبات چون اتفاق نمیفته پس اون طبیعتاً تمهش برای بدعیدن دنیا بیشتر و بیشتر میشه و هر چقدر که بیشتر این میبله و نگاه تصرفی و مالکانه به دنیا داره اون احساس خالقیت، احساس وجود درش کمتر میشه چون بیشتر میبینه که بازیچهی دنیا شده یعنی در اون دنیا رو هدف نکرده بود اون خودش رو و اثبات خودش رو هدف کرده بود ولی دنیا هدف شد و خودش بازیچه شد و این بازیچگی و دیدن این بازیچگی و احساس خلقی که از این مشاهده بهش دست میده طبیعتاً براش جز بر ایدن و جهان خاری بیشتر و نگاه مالکانه بیشتر حاصلی نداره و این انتهایی ندست. این وصف دیگه و بیان ای بود از یک انسان کافر